سوفی بیا که آینه صافیست جام را تا بنگری صفای می صفایمه فام را راز درون پرده زرندان مست فرس کین حال نیست زاهد عالی مقام را انقاش کار کس نشود دام باز چین کنجا همیشه باد به دست از دام را در برزم دور یک دو قده در کش و برو یعنی تمأ مدار به سال دوام را ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عیش پیران سر مکن هنری ننگ و را در عیش نقد کوش که چون آب خور آدم بهشت روزه دار و سلام را ما را بر آستان تو بس حق خدمت است ای خواجه بازبین به ترقم قلام را حافظ مرید جام میسته استی صبا پرو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را